چلچل چل خانی کلاق و نرگس نمایی خرزهر خستم خستم از آوازهای ناخوش خولی ابن یزید از تقسیم نور به سیاهی خاکستری سپی اینجا وقتی حشرات راه به رؤیای سیمرق و ستاره میبرند نگفته پیداست که انکبوت چطاری برای تحمل پروانه تنیده است. خستم، خیلی خستم. سلام من آرش هستم و اینجا رادیو هجره برم این قسمت اومدیم بگیم که دنیا دنیای لحظه است. یه وقتی بچه ای یه وقتی هم پیر ولی یه سریام هم هستن که هیچ وقت بزرگ نمیشه یا بچه یا پیر میشه اونا همون بچه هایی که اطرافیانشون به زور منقاش دنباریک میخوان بزرگیش رو از تو وجودش بکشن بیرون اینام لج میکنن و یه و پیر میشه اینجا رادیو هجده بنفشه، جایی که هجده بنفشه و از قضا رادیو هم هست. شما هم در حال گوش دادن به اپیزود چهارم از فصل دوم اون هستید. اپیزودی که خودش قسمت آخر از سگانه سیاه سفید خاکستریه. این اپیزود قرار خاکستری باشه، قرار تقدیم بشه به پیرشدن‌های یهودی و موهای خاکستری که تو یه سری از دوراهیا نه سیاه موندن و نه سفید شدن. اونا انتخاب کردن که خاکستری این اپیزود تقدیم میشه به تعادل و انتخاب عزیز به خیلی ساده گوش کنید از داماهی بند و ولومو بده بالا گاهی ندونسته گاهی میفتیم وسط یک دراهی گاهی وقتا همه چیز درسته اما انگار خودتو باهی. مثل یک بازی خیلی ساده مهره ها رو مهره بعدی افتاده حتی کار من نیست که بگم چی خوبه چی بد اما گاهی سواری یه وقت ها هم پیاده من دیگه نیستم بس این بازی من دیجن نیستم تو هم می‌بازی میشه مره اصولا اگه سفیدی رو نمادی از خوبی صرف و سیاهی رو هم نمادی از بدی صرف بگیریم قطعا باید طیفی باشه که وسط این دوتا قرار بگیره قضیه رو خیلی علمی نکنیم سیاه و سفید خاکستری میشه وسطش حالا باز باید قضیه روح مطرح کنیم روح بیقلقشی که در طول سالها به هر دلیلی سیاه میشه و یا سیاه میکننش و فرد از میون سفیدیا ها و سیاهی از هر کدوم یه مقداری رو میگیره و اینجاست که زیبایی داستان روح به اوج خودش میرسه حالا این رنگا و این تغییرا به ما چیزای زیادی رو یادآوری میکنه قدرت انتخاب و و اینکه هیچ وقت قیاس نکنیم قضاوت نکنیم محاکمه نکنیم شاید از روزی که سیاهی روح یه نفر رو دیده باشیم مدت‌ها گذشته باشه و اون دیگه سیاه نباشه و افراد وقت صحبت کردن بودیم. و بدونیم که هیچ کس رو نمیتونیم تو قالب خودمون برزیم و خودمون رو هم متعاقبند تو قالب هیچ کس نمیتونیم جا بدیم از بچگی مریم رو دختر خوبی بود یعنی به نظر من دختر خوبی بود آروم و پیسر و صدا بود وقتی همسایه های فضول از کتک زدنهای آقای معتاد ترگیش میپرسیدند هیچی نمیگفت میخندید و میگفت آقای من اصلا آقای پارچه آقاست اون روزی که مریم مدرسه نرفت هیچ نفهمید آخه اصلا مریم برای کسی مهم نبود. ولی من فهمیدم. دم دکون نشسته بودم و دیدم که اون روز صبح نرفت مدرسه. از در خونه بیرون نیومد. این قضیه چند روز ادامه پیدا کرد. تا اون شب ساعتهای ده و نیم که اوستا رفته بود و داشتم کرکره رو پایین میکشیدم دیدم مریم رفت از در خونه بیرون. تو تاریکی شب دیدم تو دستشم یه ساکه. زیر نور چراغ سر پیچ کوچه چش چش شدیم چش چپش باز نمی شد از کبودی تا منو دید شروع کرد به دویدن وسط کوچه پاش گیر کرد به یه قوطی و پرت زمین شد و پاش شد و لنگ لنگون دور شد از اون روز همه پشت سر مریم همه چی گفتن گفتن تو پارک دانشجو دیدنش که موهاشو رنگ کرده بوده و با پسراتیک میزده یه روز محترم خانوم می که مریم خراب شده و هرزه. از اون روزی که من توی اون پیچ مریم آزورده رو دیدم، یازده سال گذشت. توی این یازده سال مریم رو همه فراموش کردن. آقای معتادش مرد و اینجورم که همسایی ها هم می کلن هیچ کسو نداشت. معلوم نبود که جنازش رو جمع کرده. همون زمان که آقای مریم مرد، روستای منم مرد. این شد که تو قبرستون بین قبر آقای مریم و من دو تا قبر فاصله بود. وقت که میرفتم دیدن اوستا رو قبر آقای مریمن یه آبی می اون روز دیدم یه خانم با یه قیافه اداری و مرتب اومد سر قبر آقای مریم و وایساد. تا حالا ندیده بودمش. عینک آفتابیشو برداشت، کمی نگاه کرد. به زنو نگاه نمی کنم ولی برام جالب بود کسی بیاد سراغ آقای مریم. کمی که بیشتر دقت کردم، دیدم که مریمه. موهاش خاکستری شده بودن. قدش بلند شده بود و زیادی لاغر. ولی خودم مریم بود. قیافش موجه از اون چیزی بود که همساده گفته بودن. با شک رفتم جلو. سلام کردم. جوابم رو داد. خودم رو معرفی کردم و گفتم دلم تنگ شده بود. پرسیدم کجا بوده؟ راستش رو بخواین تو کل این سالا کم کم منم حرفای آدما رو راجع بهش قبول کرده بودم. مریم مددکار شده بود. گفت اون روز که رفت از خونه و از ترس مردن فرار کرد گریه زن بد افتاده بود و بدن برده بودنش بهسیستی. مریم درس خونده بود و شده بود یه مددکار. اون لحظه از اعماق قلبم، از طرف خودم، آدما و آقاش از چشمای مریم خجالت کشیدم. هیچکی نمیدونست آقای مریم و کی دفن کرده و جسدشو از تو پزشکی قانونی تحویل گرفته. اون روز فهمیدم که مریم این کارو کرده. تو تموم این سالا مریم موازه با بوده. از دور. اون لحظه از تمام قضاوت از تمام کمک نکردرامون و به خاطر تمام اون تنهاییایی که مریم کشیده بود، ازش عذر از خواستم. مریم مثل همون سالا لبخند زد و گفت حداقل این بود که یاد گرفتم کارهایی که با من کردن و با کسی نکنم. مریم دور شد ولی حرفش مون توی گوشم و آوار تنهاییاش هوار شد روی دوشم منو قضاوتم نکن که خیلی ساده میشکنم از واجه ها تبر نساد زخم نزن رو بدنم منو قضاوتم نکن از روی حرف آدم ها نظار که حسرت بشینه تو قلب خاطرات ما من از سوای تو پولم خالیم از گلایه ها من تو رو باور میکنم تو هم به سمت من بیا به پاس اشنام که شده و بکن با حرف منو دوبار سند کن و است روزای رو منو قضاومتم نکن که خیلی صدهنیم از واژه ها خبر نازز زح نزن رو بدم منو قساوتسم نکن ساده لوره جون نگیره وقتی که رد پای تو از توی قلبت نمیره از اونجایی که همه چیز در دنیا نسبیه، پس نمیشه بعد خوب مطلقی رو معلوم کرد. شاید یه چیزی که برای ما خوبه، برای یه نفر دیگه خیلی هم خوشایند نباشه. ولی بعضی چیزا همیشهها دردناک و بدن مثل دروغ و خیانت و جبر و نامهربونی. هیچ نیتی هم نمیتونه اینا رو توجیه کنه. شما با هیچ دلیلی نمیتونید تجاوز رو لاپوشونی کنید. بدخلقی‌ها زمینه‌های مختلفی دارن، ولی زمانی که بدخلقی از روی خودخواهی باشه بده. ما باید انتخاب کنیم انتخاب کنیم که چطور رفتار کنیم انتخاب کنیم که بشیم اسیر جبر و یا خودمون باشیم و یه فرد و مفید و مهرب. مهم نیست که چه باشیم، مهم نیست که چطور حرف میزنیم؟ قیافمونم مهم نیست. مهم اینه که هست ما به هست دیگری آسیبی وارد نکنه. دلی رو نشکنه و طبیعتی رو آتیش نزنه. بفهمیم که خاکستری بودن یعنی قبول تفاوت و اینکه تفاوت با توهین فرق میکنه. اینکه فش بدی به عقاید کسی فرق داره با اینکه عقاید اون فرد با تو متفاوت باشه. تعادل به انسان یاد میده که جنگ بده، دروغ بده، نامهربونی بده و خیلی چیزهای دیگه. اشتباه از ما بود که خواب سرچشمه را در خیال پیاله می‌دیدیم. دستهامان خالی، دل‌هامون پر، گفتگوهامون مثلا یعنی ما کاش میدانستیم هیچ پروانهای پری روز پیلگی خیش را به یاد نمی‌آورد. حالا مهم نیست که تشنه به رویای آب نی میری. از خانه که میایی یک دستمال سفید پاکتی سیگار گزینه شعر فروغ و تحملی طولانی بیاور احتمال گریستن ما بسیار است دمن که شان ساقیه می خواران کنار یاران مست و گیسو افشان در جام از شرنگ دوری و از غم مهجوری چون شرابی جوشان بریزد دارم قلبی لرزان زقمش دیده شد نگران من میخاران از کنار یاران مست و گیس و هفشان میگریزد دارم چشمی گریان روز و شب به شمارم تا آخ دارم چشمی گریان برش روز و شب به شمارم تا هی بابا. شدم مثل معلم دینی سوم دبیرستانمون که دانشجوی دکترا اخلاقم بود. دقیقا شدم مثل هم. هی نصیحت کردم گفتم چی خوبه، چی بده. خوبه خودم گفتم همه چی نسبیه. بیخیال. مثلا بیخیال حرفایی که زدم. به این فکر کنیم فقط که ماها وقتی به دنیا میایم، در طول زندگیمون خیلی چیزا دست خودمون نیست. ماها خیلی چیزا رو خودمون انتخاب نمیکنیم اون اول. تو بیشتر مواقع تا جای زندگی ماها مجبوریم بچاپ. آیا جایی به بعد ما باید انتخاب کنیم به چیزی که جب برامون انتخاب کرده یا اون چیزی که خودمون برای خودمون دوست داریم حالا از اون حالت معلم دینی که دکتری اخلاقم داره در اومدم اینجا رضیو 18 بنفش بود و شما به خاکستری سگانه سیاسفید خاکستری گوش داری. خاکستری دقیقا اون رنگیه که آدم از وسط همه اون ویژگی‌هایی که جنها و جامعهش مجبور به داشتنش کردن برای خودش انتخاب می‌کنه خاکستری دقیقا اون رنگیه که آدم همه زندگیش رو گشته و گشته تا پیداش کرده و برای خودش انتخاب کرده دنیا همینقدر میتونه بیره باشه که یه بچه رو از همون اول مجبور کنه به دوست داشتن و انجام کارایی که دوست نداره و اون بچه سالها مجبور میشه به انجام اون کارا و دوست داشتن اون چیزا. تا جایی که یه روزی میبینه باید به جنگ تا برسه به خودش و دوست خودش. اینجا رادیو 18 بنفش بود لطفاً ما رو با کسی مقایسه نکنیم لطفاً سعی کنیم کلن قیاس نکنیم ما سعی داریم خودمون باشیم حالا چه خوب چه بد چه قوی چه ضعیب چه متوسط مهم اینه که خودمونیم و سعییم داریم خوب باشیم اینجا رادیو 18 بنفش بود رادیویی که قرار مهربون باشه و سعی کنه مهربون بمونه شما به قسمت چهارم از فصل دومان گوش دادی موزیک آخر به یاد هادی پاکزاد عزیز و تمام تفاوتاش بخش میشه هادی پاکزادی که تلاش کرد فقط و فقط خودش باشه شب به روی جاده نمناکه ای بسا من گفتن با خود زندگی آیا درون سایه هامان رنگ میگیرد یا که ما خود سایه های سایه های خیشتن هستیم این قسمت عرقوانی نباشین، خاکستری باشین مهربون باشین، شاد باشین و امیدوار تمام گل دل فری و صورت واقع من پس هویه گل بارگه تو کو اشت مان چیزی به گل بی بسوز چشم من خاسته بدوند تانسی من سرد شب است ساقه تو می وذه به صورت من هنوز دیوانه تام عشق من پایز شهری بگو باسه مهری بسار خیل فوق من پس بوی گل برگت و عشق من چیزی بگو قلبی بسوز چشم من خسته بدوز شبنم زلال چشمه چشم گونه های پرخواهشه واسه من آرامشه بارون نبا عشق من تنها نزار کردی من تو توی باغ کهنه و پی تازگی نداره این فصل فصل پاییز فراگی نه درخت نه نریشه شیفته یه سنگ همیشه گل دلفری به من تا نه به قانون همیشه به سرخه به من چیزی بدو قلبی بسوز چشم به من خاسته بدو به جنون کشیده فاکتیه نفس از رنگ جمودان تو خفه زنگ در فری بخان دعای تو میوه